دسل سیزده خوب آن رو صبح را به یاد دارم وقتی از خواب بیدار شدم مادر با تعجب و حیرت و نگرانی و نگاهی پر از سوال پرسید مانوس چطور محمد از رو رسیده نیومده اینجا نفسم بند آمد و پرسیدم مگه اومده؟ آره صبح به امیر زنگ زد و با هم قرار گذاشتن. نفس بریده پرسیدم. کجا؟ کی؟ نمیتونم نمیدونم نفهمیدم. مهن طوری شده؟ حرفتون شده؟ خبر شده که تو به ما نمیگی؟ رو برگرداندم و دور شدم. فقط گفتم نه. و چشمهای پرسان مادر را گذاشتم و فرار کردم توی اتاقم. و دیگر بیرون نیومدم. مثل دیوانه ها راه میرفتم و با خودم حرف می زدم. دست به دست می و نمی دانستم چه کنم. بارها خواستم گوشی را بردارم و تلفن بزنم ولی می جرسیدم. توی غرقاب سرگردانی و پا می زدم که آمد. صدای سلام و روبوسیش را که با ما در شنیدم میخواستم پرواز کنم. از شادی فریاد بزنم و صورتش را قرق بوسه کنم. ولی در حالی که زربان قلبم چند برابر شده بود، پاهایم هم انگار یخزده بود. می ترسیدم. از روبرو شدن با امید ترسیدم. توی جنگ با خودم بودم که چه کار کنم؟ چطور رفتار کنم که آمد، وارد شد و در را بست و من تقریبا از حال رفته روی تخت پرچاماند. سرش پایین بود و من انگار همه وجودم نگاه بود. چقدر لاغر شده بود. داشتم در دل از خدا برای برگشتنش تشکر میکردم و با خودم عهد می که دیگر آدم بشوم این ده روز برای تنبیه شدنم کافی بود. دیگر برای یک روز هم حاضر نبودم از دستش بدهم. توی این افکار بودم و خیره به او. در چه خوشکم زدم. آنجا بود، نزدیک من، و من قدرت نداشتم صدایش کنم. بعد از آن همه رنج، آن همه انتظار حالا برگشته بود، ولی سرد و سخت. محمد من نبود. سکوت مثل دیوار سنگی بین ماهایل بود، و من انگار مسخ شده بودم جرأت کوچکترین حرکتی را نداشتم. آرزویم بود صدایم بزند. رویش را برگرداند تا چشمهایش را ببینم. ای خدا، اگر صدایم میزد. وجودم فریاد میزد محمد. ولی لبهایم انگار مهر شده بود و او ساکت بود. خدایا چرا ساکت است؟ دستهایش را توی موهایش کرده بود و انگار که با کف دستهایش شقیقه هایش را فشار بدهد سرش را محکم نگه داشته بود کنار پنجره و پشت به من ایستاده بود بی‌صدا و آرام نمیدانم چقدر گذشت چند دقیقه یا چند لحظه که برای من بی‌نهایت طولانی و شکنج آور بود یک دفعه صدایش را صاف کرد و برگشت این بار رفت سمت میز قابی را که از اصفهان آورده بود برداشت و برگشت و چند لحظه بعد با یک پوس خند تلخ انداختش روی میز و بعد بدون اینکه به من نگاه کند گفت. زیاد وقت ندارم. خلاصه میگم. فکر کردم نه صدایش آرامش و تنین همیشه گیره دارد. نه قدمهایش استواری و شتاب قبل را. صدایش لرزشی خفیف داشت ولی نه از خشم. قمگینی صدایش قلبم را پاره پاره میکرد. خیلی فکر کردم البته چند وقت بود که فکر کردم، ولی ده روز پیش ساکت شد نفس عمیقی کشید و بعد از چند لحظه ادامه داد ما به درد هم نمیخوریم و من خوشحالم که هنوز اتفاقی نیفتاد و تو راحت میتونی آزاد بشه و بری دنبال زندگیت نفسم بند آمد خون توی تنم ایستاد یخ زدم و دیگر مثل مرد توانه هیچ اکسال عملی را نداشتم او هم چند لحظه مکس کرد دستهایش را مشت کرد مثل کسی که درد می رویش را به سمت پنجره کرد و بعد خیلی تند و سری گفت من میرم به احترام مادر آقا جون به همه میگم تو نخواستی و نظرت عوض شده تو هم همینو بگو رویش را و بدون اینکه نگاهی به من بکند که انگار روح داشت از بدنم خارج می شد با قدم های بلند به سمت در رفت. با تمام قدرتی که داشتم صدا نکردم. چه زدم. محمد. یک آن مکس کرد. ولی بعد خیلی سری فقط گفت. خدا این کار نفس توی سینه هم شد. پاهایم به راستی مثل دوتا وزنه سنگی سرد و سخت بود و قدرت نداشت. و محمد از سنگ سختتر، حتی یک لحظه هم مکس نکرد در رابه هم زد و رفت و انگار روح مرا به زنجیر درد کشید و با خودش برد. حس و حال حرکت از من سلب شده بود. ضربه چنان کاری و قوی و بیخبر بود که گنگ و لال شده بودم. مپوت مثل یک چوب سوخته بیهوش و منگ خیره به درمانده بودم نه این ممکن نبود غیر ممکن بود یعنی محمد دیگر مرا نمیخواست یعنی برای همیشه رفته بود دیگر بر نمیگشت من خواب نمیدیدم حال خفگی به من دست داده بود. مثل اینکه مسافتی طولانی دفیده باشم نفس نفس میزدم و قلبم از شدت تلاتم مثل این بود که به قفسه سین میخورد. حس کردم در حال مرگم. شاید معنای دقیق خفقان را من آن روز با تک تک سلول هایم حس کردم. نمیدانم چقدر توی گرداب دست و پازدم. یک روب، یک ساعت. دو ساعت واقعا نمیدانم همینقدر میدانم که با فریادهای رعداسای امیر بود که از قعر جهنم و گرداب رنج به زمان حال برگشتم این کجاست؟ شماها نتونستین من آدمش میکنم بری کنار مادر فریاد میکشید و به سمت بالا می آمد و من خوشگیده و رنجور بدون هیچ اکسل عملی منتظر ماندم دیگر بدتر از آنچه بر سر من آمده بود مگر چیز دیگری امکان داشت که پیش بیاید. در اتاق با شدت باز شد. امیر خروشان و قران در حالی که مادر و علی سعی داشتند جلویش را بگیرند به سمت من می‌آمد. از کوه در رفته بود. مثل سیلی پرجوش و خروش به طرفم آمد. مادر و علی حراسان و وحشت زده و گیج بودند. برعکس من که مات و خون سرد نگاه میکردم. این تنها باری بود که توی خانه ما صدای فریاد و به گومگ و به گوش رسید و برای اولین و آخرین بار صدای امیر بر سر من بلند شد و شاید اگر مادر و علی مانع نشده بودند دستش هم بلند میشد. و تنها باری هم که امیر را آنطور اختیار از کف داده و بیقرار و از خشم و کف بر لب آورده دیدم همان روز بود حقیقت این بود که از دست دادن محمد برای خانواده من و خصوصاً امیر به همان اندازه خود من مصیبت بود و غیر قابل تحمل فریادهایش انگاش انگاه شیشه ها را می لرزاند. در جواب خواهش ها و پرسش های مادر به جای جواب میقرید اون روز که هی به شما گفتم حواستون به رفتار این باشه برای همچین وقتی بود هی من گفتم و شما نشنیدین. حالا خوب شد؟ مادرها هاج و واج و درمانده مرتب میپرسید مگه چی شده؟ چرا درست حرف نمیزنی؟ امیر دوباره فریاد زنان گفت چرا من بگم؟ از خودش بپرسید از اینکه اینقدر ما رو آدم حساب نمی که سرش رو تکون بده از اینکه که اصلا ما رو نمیبینه؟ مادر پرسان و درمانده به سمت من برگشت و من در حالی که تمام وجودم درد بود باز ساکت و سامت برجاماندم امیر سکوتم را پای بیحرمتی میگذاشت در صورتی که من حرفی برای زدن نداشتم چه می گفتم که مرا نخواست؟ حس کردم که محمد امیر را دیده و از او خدا کرده و لابود گفته که من او را نخواستم که امیر اینطور جوش آورده است. من که راه پس و پیش نداشتم جس و چه کار می توانستم بکنم. امیر همچنان فریاد می زد. امیر خوش اخلاق و معدب و خوش رو چنان اختیار از دست داده بود که اگر هر زمانی غیر از آن موقع بود پا به فرار می کساشتم. ولی آن موقع انگار همه ی وجودم رخ شده بود. هیچ حسی نداشتم. برای همین مثل مرده بیه سوحال و خونسرد نگاهشان می کردم و فریادهای امیر را گوش می کردم. که می گفت مادر من اینقدر نگو ساکت اینقدر نگو آروم باش آخه این چه حقی داشت بدون مشورت بدون اجازه شما بگه نمی زندگی کنه بگه پشیمون شده بگه اشتباه کرده مادر بخت زده یک دفعه دست از امیر کشید و به سمت من نگاه کرد و در حالی که انگار پاهایش سست شد. لبه تخت تقریبا ولو شد و پرسید. نمیخواد زندگی کنه؟ انگار به مفهوم حرفها ها پی نبرده باشد. دوباره حرفهای امیر را تکرار میکرد. امیر گفت. بله آخه این پدر نداشت. مادر نداشت. بزرگتر نداشت. صاف و صده برگشته گفته نمیخواب. اون روز که هی به خنده و شوخی به زبانه بیزبونی به خودش گفتم این راه و رسم زندگی نیست گوش نکرد به شما گفتم بهش بگین نگفتین بفرمایید اینم حاصلش حالا خوب شد؟ مادر که انگار به زور حرف میزد گفت. مادر جون حالا این یه حرفی زده بیجا کرده مگه زندگی شوخیه مگه رخت تنه این بگه من نمیخوام و تمام دو سال پسر شب و روز اینجا بوده جواب مردم و چی بدیم اینا عقد کردن مگه به این راحتیه این یه غلطی کرده اونم حالا عصبانیه یه خورده بگذره امیر پرخاش حرف مادر را قطع کرد و گفت <تصح> به همین خیال باشین اگه شما محمد و هنوز نشناختین من خوب میشناسمش محمد هیچ حرفی رو بی خود نمیزنه وقتی هم زد دیگه تمومه فکرشو کرده تصمیمش رو هم گرفته خاطرتون جمع بابا قضیه اینا مالی یک روزه یه ساعت نیست آخه شما چرا حرف منو نمیفهمین؟ باز چشمش به من افتاد و به طرفم حجوم آورد آن روز در کمال تعجب دیدم دلم میخواهد کتک بخورم تلم میخواهد خواهد یک جوری خودم را مظلوم و قابل دلسوزی ببینم و برای خودم دل بسوزانم تا بلکه درد کتک و احساس مظلومیت از عذابم کم کند ولی مادر و علی دوباره نگذاشتند مادرم همچنان سعی داشت قضیه را یک اختلاف ساده بداند و همین امیر را بیشتر از کوره در می برد. آخه مادر من، هی نگو ساکت تا کی می با سکوت و مدارا زندگی کنی؟ سایكم بفهمی قضیه چیزی بالاتر از سوءتفاهم و جر و بحثه که محمد قیره همه و زده که تا این گفته نمیخوام گفته باشه با این حرفش یک دفعه اشک به چشمم هجوم آورد به یاد آوردم که او بود که قید مرا زد و این واقعیت تازه انگار توی ذهنم معنا پیدا میکرد و اصمت مصیبتی را که پیش آمده بود باور میکردم امیر در حالی که رک های گردنش از قیز متورم بود گفت آره آب غوره بگیر اینقدر گریه کن که چشات کور بشه بدبخت حالا کتابه فهمید چی به سرت اومده گریه ها حالا بعد از اینه حدش مادر با بیحالی امیر را دعوت به آرامش می کرد آدش قذبش شعله برتر می شد برای چی باید ساکت باشم با همین ملاحظهای بیخودیتون لوسش کردین بدبختش کردین بابا بسته دیگه همه مثل شما حوصله ندارن ناز این توفره رو بکشن یه مسافرت دو سه روزه ما با اینا رفتیم شما که نبودین عزیز رو ببینین زن من نبود خواهرم بود دلم میخواست خفش کنم وای به حال اون بدبخت هر دفعه ما با اینا رفتیم بیرون شما که نبودین ببینین چه اداها که از خودش در نمیاره چقدر بهتون تذکر دادم هی hey, گفتین نخالت نکن چیزی نگو درست میشه حالا درست شد؟ خیالتون راحت شد؟ مادر من محمد چند وقت بود که ناراحت بود توی همین چند ماهی که من بدبخت به شما اختار کردم و شما انگار با این توفه رو دروستی داشتین یه تو بهش نگفتین حالا تازه حرفای من مال رفتارایی بیرون توی جمعش و با غریبه ها بود دیگه توی خونه و بین خودشون خدا عالمه که چه غلطی کرده. خلاصه این که میگن خلایق هرچه لایق راست میگن. حالا بگرد یکی لنگه که خودت پیدا کن. تازه خانم ناراضی هم بودن. فرمودن پشیمون شدن. <تصفح> بیچاره فکر میکنی کی این وسط ضرر کرد. اون که راحت شد. جونشو برداشت و رفت. خلاص. این تویی که بدبخت شدی و نمیفهمی. یک دفعه مثل این که دوباره جوش بیاورد پرخاشکنالو با شدتی بیشتر رو به من فریاد زد بشین فکر کن ببین به چی مینازی آخه به چی مینازی که من نمیفهمم به فهم و کمالت به تحصیلات بالات به علم و معرفتت به فهم و شور اجتماعیت به آداب دانیت به چی چرا لالی بگو دیگه بگو به این چشم و ابرو که بدبختت کرد و به این پدر و مادری که لوس و ناز پرورده و عزیز دوردونت كردن ده بگو حرف بزن ولی اینجا شدی که نخونده بودی که چشم و ابرو با کله پوک و احمق به درد زیر گل میخوره نه فریاد آمیز مادر بلند شد و من زار زنان سر روی زانویم گذاشتم به تلخی گریه میکردم و در دل به درستی حرفهای امیر فکر میکردم امیر در جواب اعتراض مادر گفت <ثقان> نه ترسید. عزیز نتون با این حرفا نمی میره فکر میکنین این کاری که این کرد غیر از خاک به سر خودش ریختن چی بود؟ من محمد و از خودم بهتر میشناسم جون به لبش رسیده راه دیگه پیش رو ندیده که با این حرف خانم گذاشت و رفت فقط اینو بدونین با همین دل سوزیای بی خودیتون. با همین هیچی نگو هیچی نگواتون کار به اینجا کشید اینکه احمق تیشه به ریشه خودش زد شما نشستین و نگاه کردین حالا اینم حاصلش بعد همانطور که به سمت در میرفت دوباره کوبند و قران گفت اینم یادتون باشه توی این خاکی که این به سر خودش ریخت شما هم مقصرین همین بعد درو محکم به هم زد و رفت. مادر زار میزد و مستاصل و درمانده مرتب گریه کنان پشت دستهایش میزد و از من سوال میکرد و من حرفی نداشتم بزنم. تنها در جواب مادر که پرسید: "آره من از تو گفتی دیگه نمیخوای سرم را تکان دادم. مادر در حالی که لبش را گاز میگرفت، اشک ریزان پرسید: "یعنی چی؟ اوه چرا؟ مگه میشه؟" مردم چی؟ جواب آقا رو چی میدی؟ بگه شوخیه دو سال شب و روز من فقط توانستم حرف خود محمد رو تکرار کنم ما به درد هم نمی خوردیم سالها بعد همیشه فکر می کردم اگر آن روزها محمد رفته بود و گفته بود که او دیگر مرا نمی خواهد چه بر سر من می آمد اوزا چگونه می شد. خانواده چطور می توانستن تحمل کنند؟ واقعا اگر مطرح شد که اومرا نخواسته، برای خانواده ما ننگی غیر قابل تحمل بود. البته بعدها به ارزش گذشته که محمد در حقم کرده بود پی بردم. بعدها فهمیدم که این گذشته محمد چقدر به حال من و خانواده هم مخصوصا جلوی مردم و دیگران مفید بوده. ولی سوزش این داغ درونی و این راز که خودم از آن باخبر بودم هیچ وقت توی سینم کم نشد. واقعیت این بود که او مرا نخواسته بود و این حقیقت تلخ مدام به روح و جان من نیش میزد و زهر تلخ حقارت و پس زده شدن را به جانم می اینکه روزها و شبهای بعدی چطور گذشت قابل گفتن نیست. زندگی آرام ما چگونه به هم ریخت و آرامش همیشگی و فضای خوشبختی که همیشه بر خانه من حاکم بود از پین رفت محترم خانم آمد پریشان و گریان مدام می گفت مادر، باید به من بگی چی شده مگه من می به این راحتی زندگیتون به هم بخوره تقصیر ماست که زود دست به کار نشدیم به خدا مردم چشتون سده باید به من بگی چی شده؟ محمد حرفی زده؟ کاری کرده؟ تو به من ببخشش؟ به خدا محمد خورده خوردتون هست ولی توی دلش چی نیست؟ حاج آمد جلسه گذاشتن که مثلا مرا راضی کنند و سر در بیاورند قضیه چه بوده؟ محمد رفته بود کجا؟ معلوم نبود و همه نگاه ها و پرسش ها متوجه من بود فتم خانوم و آقا مرتب تلفن می کردند. امیر که حتی دیگر توی صورت من هم نگاه نمیکرد کرد. علی سربزی رو با خجالت می گفت. من ناصیف محمد آغاست. و من چطور می توانستم بگویم کسی که است، اوست نه من. چطور می توانستم بگویم جگر خودم خون است و دارم خورد می شدم. چطور می توانستم بگویم کسی که باید رازی شود و برگردد اوست، نه من؟ در دلم به تمام کائنات بد و بیراه می و به محمد. جای خوبی گیرم انداخته بود. جایی که نراه پس داشتم نراه پیش. در جواب حرفهای دیگران چیزی برای گفتن نداشتم. غیر از عشق و اشک و اشک مثل کسانی که ماهها بستری بودهاند رنجور و تکیده شده بودم با رنگ و رویی زرد و استخانهای گونه بیرون زده نه غذا از گلویم پایین میرفت نه به چشمهایم میآمد مثل مرده انگار بدنم هیچ حسی نداشت نه حوصله ی حرف زدن داشتم نشنیدن حرفهای دیگران و تنها چیزی که باعث عکس عملهای فوری و بیختیارمی شد صدای زنگ در یا زنگ تلفن بود که مرا از جا پرند. با صدای هر زنگی چند لحظه تصور میکردم که محمد برگشته یا تلفن زده. دائم انتظار میکشیدم. انتظاری کشنده و غیرقابل تحمل. بدون اینکه حتی به خودم اعتراف کنم. ولی ته دلم امیدوار بودم. امید داشتم که پشیمان شود و برگردد. فکر میکردم چند وقتی بگذرد عصبانیتش که فروکش کند دلش تنگ میشود و برمیگردد و برای خودم چه خیال بافیها که به دنبال این افکار نمیکردم و شاید یکی از مهمترین عواملی که باعث شد در برابر سوالها و اصرارهای دیگران طاقت بیاورم و حقیقت را نگویم همین بود. ته دلم امیدوار بودم که محمد برگردد با سکوت روزها رو میگذراندم، در حالی که هر چه همراه جسمم روحم هم تحلیل میرفت، و ضعیف می و تنها با کورسوی امیدی که داشتم خودم را سر پا نگه می داشتم تفلک مادرم مدام مقموم و ساکت بود و هر وقت هم میخواست حرف بزند بدتر از خود زیر گریه میزد. محلاس، پا به بخت خودت نزن؟ تو دیگه الان یه زن میوه حساب میشی. مردم چی میگن؟ مادر، دیگه فکر میکنی کی زیر بار ازدواج با تو به عنوان یه دختر میشه. چلوی سر و همسر آبروی روی خودتو مارو نبر. زمان من در دل خون گریه کرد.